و آنه الانتاییدین و پاهرین و محصولین و لعت و دائمه ترار دائمه مجمعین آمه محمایم و جمعیم و مشتغلین و که یا بحثی که مطرح شد یه مدره از بحث خواهش شدیم به مناسبت اینکه که من متعرض بحث کبیره و سبیره شده و منکر کبیره شده دیگه گفتیم بیه مراسم دل به که شیخ Ansari رحمت الله و و شریف مطرح فرموده بودن این که آیا گبر گوز کبائر هست یا نه اصل بحث این بود یه مرحوم استاد بختی بحث تشفیزه کبائر و صغائر میگه ما کبائر نداریم توی بحث سه هم یک کمی متعرض شد ببین تفسیر متعرض شد حالا شو مرحوم استاد دیگه متعرض شد ما هم دیگه فعلا وارد شدیم و از کردیم که این مطلب یک ریشه قرآنی داره آیه 33 یا 34 سوری نسا انتشتن و کبار رواتان ها نهر و ندخل کن مدخل ها البته الان در مصقفای مورود مدخل در که نهر شده فکر همین که قرآن اهل مدینه مدخل مکنده و ندخل کن مدخلن کریما ارز کنم که برای این مطلب یه مقداری اول برای اینکه آشنا بشیم با محیط اهل سنت و جبری که اهل سنت در این جهت تا و بعد هم اشاره بحثی رو روایات و فتاوای از ما و ببینیم آیا همینطور طور از یاده بله احس که من از دو جا یه نقاش سریع میخوام چون تحتارات داره یکی از کتاب دور منصور سیوتی که انصافت هم زحمت کشیده خوب کتابی در بوده راجعه به تفاص... آیاتی که ویسا تفاثیرش یعنی هر دوار نقایی ها دیگه در تفاثیر آیات تفاثیر منصور که در معادلش یعنی مردم بردها برهان یا نور و از ما نوشتم هم دوتا هر دوش رو نفس دارم از دیدم شیدن دارن کامل نیستم مجموعه به حساب روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده و فکر خوبیست بسیار, بسیار بسیار فکر خوبی هر کنم که از صفحه این چاپی که دست من هست از گرد دو سوری مثل آیه از صفحه صد و و تا یعنی تا صفحه 148 آخر از 127 مان. این وجه یک مقدارم برای اینکه اون جهان نهایی نهاییو هستی و تنظیمش لطیفه از کتاب کورتوبی دیگه در عهده سونر به همین دوتا اکتفا میشه. ازشم که ایشون در این تفسیر آیه در کتابه درمانسور کلمات اولاد در من یه مداری سریع تر اونهایی که محل شاهد ماست اولا دراجع به ارزش خود این آیه تشتن بودتباه ارمانتون اصابه جز آیات محکمات به جز کنگیات و امهات بارانه اصابه هر با ارزشه. یه اینجا هم داره در بخشویت اشاره بکنه یه چند تا کلمات از صحابه آمده که مثلا این آیه خود و از قاعده آیه مهمی است و قابل ارزش‌راستن مثلا از ابن مسعود نقل کرده اینفی در سوره نساء خمس آیات ما یسرنی لو ان لی بها قد دنیا و ما فیها یعنی تمام دنیا رو حساب بکنید به اندازه پنج آیه که در سوره نساء فقط هست باز هم نمی‌رسه و لابد ان العلماء ادامه مرورده ها یعرفونه ها علما مراد کسان نهیه که محدث باشن خبا من تعمل و تفکر بود قول رو تعالی این تشتن رو کبا ارنو تنگان میتیشم همین آیه است. قل آیه و قول رو گون اینالله لا یعنیم افقاد ربته یکی هم الله لا یعنیم یعنیم شاکه به یکی هم قول رو تعالی ولو انهم ارالمون از اون میشن علاوه بر او من يعمل سوءا و يضل نفسه انسان ها خوب انتخاب کرده البته شبیه این عبره هست جور دیگه یک چیزی شبیه این مطلب از انصف نمالک داره بازی ایک مطلب دیگه از انصف نمالک از کمشون نمیخونم بعدم یک مسئله بسیار معروف چون فهنسانه مسئله شفاعت که الان از این سنی های ما آسر خیلی روش حساسیت میشوندادن حده ایدیادی از روایاتی در باب شفاعت شفاعته به مناسبتی همین ذهب این آیه مثلا ان سمعت سمعتن صلی اللہ علیه و, و الا ان شفاعتی ان شفاعتی من امتی تو مختل آقا دهید آیه تشتنه بود ما خب بعد یه بباره ایسی که در عده از کتب آمده و قول این مضمون مختلفی داره برمی‌گرده به ابوهریره که پیغمبر اکرم فرمون مثلا کسی که پولا کار بکنه و یگ بود بول شبائر صبر این تعبیر به کبائر صبر به اصطلاح در این روایت اعظم شبائر صبر یا صابر یا یا سمو به واسه صبر در روایت ابوهریره رسول الله الا فتح لهو عباد الجنة سمایی یوم بیامد انها ل یعنی شد همه میخورند درها به ثم و کبا امثالن ها و این جهت لجبه ارزش آیه بله. یکی دیگه از رو بایدی که بله. به اصطلاح در تفسیر لیکن بیشتر از صحابه است امال حسن مراد از حسن این در اطلاق حسن بسریست که جزو تابعیه امال ناسم سالالق و حبدالله ابن عمر همین که پسر عمر آس محروف به مصر فقالون را اشیاء لفظ اشیاء غیر منصرف را در علتش اختلاقه نرا اشیاء من کتاب الله امر ان یؤمل بها لو یؤمل بها و اینکه خدا گفتید فعبدنا الن القا امیر المؤمنین و روش عمر به زدن فی ذلك فقدمه یعنی فدم عبدالله و سلام الله و لقد ما فنبی عمر شبانه یا امیر المؤمنین ان الناس لا قونی بنسراء فقاموا اننا را اشیاء من کتاب الله آمره هم بها لا یو بها بهها. فا احبو اینا دلشو میخاد آن یال قرف واتر رو برویش. فیزالت. فا قله جمع هم دی، فجمع هم ده. بل. فا اخدا ادناهم رجل، ممکن ازیک هم. اون وقت. تا اینجا میگه حالا هریش بخونی. فا اونی شدو که بله یا انی شدو که بله از که این لحظ و گفتش دو جور برای شده هم سلاتی مجرد هم باب افعان انی شدو که هم درسته اونی شدو که هم درسته بله به حق الاسلام علیک اقرعت القرآن کلله قال نه قال فهل احسای توفی نفسه میتونیت هم قرآن جمع رفتونی قوی قال الله قال فهل احسای توفی بسره حل احسای توفی نفسه حل احسای توفی اثره تنبه تصویم همه حتی تا الاخره یکی از اون مردا ساکه از ارمه است قال تفکلت امره امه اینجوری بخونی مادر امر به ازاش بشین این اصلاح هرهی است تفکلت امره امه که فائل سکلت امه امر به اصلاح نفغول مقدم تفکلت امره امه اتو او. شما دل تو میخواد شما خودتون یاد میاد نگیری، دل عمر مثلا همه یاد بگیره علاو امیری مناز علاو کتابلا. کدوم علی مراتب نام؟ ام نهُ ساکون ولنا سی آ و تلا مله. این تشن بود ما با ارمان تنهونه آن تونه آن نکات کرد امکا سی آتکم ال در این کلام میخواد که ما همه گناه میکنیم و وعده الهی سو جلوم کار رو گرفته باز در روایت داره یک قطع من بیشتر نظرم روی قائلی میشه و خلاصه بحث کلمات طولانیه قطعه قطعه جزو تابعینه خودش لمیدره که رسول الله لکن حضرت رسول الله من اگر یاد باشه ارز کردم موارد تفسیری در عمده در جمعه معارضی دینی کسی مباحثی است که خیلی سابقه داره. سه فقه هم توی صحابه هم توی تابعین. در میان صحابه مثل ابن عباس، مثل ابن مسعود، مثل خودش تا یه حدی عمر، عمر کنج. حالا غیر از احمد و کلع اصحاب عیسی. در میان تابعین هم یک چند این کارو به این مناسبت اصرارشون ارج می یکی خطا داره. از خود اینجا من خطا ندارم. این نما وعده الله هول معرفت الكبائر و ذکر لنا الله عليه و این از طرودی از ابن عباس حالا اون یکی ازش تا اینجا ای که ارزش آییم که از ابن مسعود بود یا این مطلب از اومد بود که حالا اش مال درست ارزش آییم می‌کند. کلامی از ابن عباس نروی کردن از این متعدد نروی شده خود ایشون مسادرش رو بردن فیلن نمی خودن ابن عباس قال کل ما نهلاها ان فا هوا کبیرتون و از ذکرت از طرف طرف یعنی به اصلا طرف خودش معنای چشمه یعنی چشمک طرفی خود طرفه رو معنای به فارسی چشمک میشه یعنی از نغره. همون دیدم یک وا دیدم این کلومان حلاغ و انحفه و کبیرتان این شبیه رعی آخویه اگر یادتون باشه در بحث دیروز متعرض شدیم این مطلبی که استاد پرمیدن که گناه کبیره و سقیده نداره همه کبایره من اگر یادتون باشه از صحابه شروع شده ایم. این صحابه از عبدالله ابن حباز بعد آد سهل تو باز این روید گفت هم ابن حباز. از کبایر آل و کلوشه یعنی اصیم لاقفی فهوه کبیره پس طبق این نقل که از همون زمان صحابه شروع شده فرق بین کبیره و سریره نیست البته اینجا با اونجا یک نقطی من ارزی کنم همیشه مخصوصا وقتی بزرگان رو میشنوید دقت بکنید زرافت هایی داره مثلا در اونجا کل ما نحل لا هر چیزی که خدا کرده اونجا میره دنبال مثلا برخورد ما با دلیل لحظی با قرآن با روایات هر چیزی که خدا گفته نکن این میشه کبیره در اینجا داره که کل شیء ان اسیان لاغفی اگه متصل به فارسی بکنیم هر چیزی که شما اسیان خدا بکنید یعنی معیار در گناه بودن این است که شما اسیان کردین همینطوری که در آیه از آن لله تجری ما در بخصه و حصول همون تحرسیم در مثل کفایه ایشون مصدره که به اصطلاح محصیت این نیست که انسان حتما یک گناه واقعی انجام بده اصلا مئیار یک نکتی است نه به خود فعر اون نقطه فائلی اقدام انسان در محصیت خدا این اقدام همه جوی این ها وقته میخواستم خود شما کبیر روش کنی دوشه این حرسی الله و فی اینه که آقای خویی فرانه کلوه جور از آن این اینه استدلال آقای خویی مهمه در باب گناه این از که انسان اصیان خدا میکنه در این جهت در جهت اصیان و تجربیه ارالله یا به تبیره تون آقای خویی یه سن کفایی حد کنه مولا در این نقطه فرق به نحنوهای گناه نداره خب این یک تحصیل باز مساده بشه نوشته اینجا یک مساد قال کل ما وعد الله و علیه النار کبیرتون. این همون تفصیل است که که زیاد در موضوع هاشی این تفصیل که کل ما وعد علیه النار. باز از ابن عباس قال از کباهر در کباهر که بیروز وقتی کلمات محروم استال رو از مصوال فقاهر کردیم به این تفاصیلی که ایشون در اینجا این در کتب اهل سنت از زمان صحابه معتبره این عبارتی ایشان اینه معیار در صحابه در کبیره کل ذنب خفهم الله بناله این یک اگر توش آتش باشه دو او فلان ابن مثلا قددا الله و علیه هر جایی که خداوند داشته باشی، کی الله نو علیهم اون هم کبیره است او لعنت الهی که الله مثلا این هم کبیر است او فبشه با ملیم. و عذاب فبشروا بعذاب العظیم پس معیار رو چهار تا یکی نار باشه یکی که باشه یکی لعن باشه که عذاب حالا تعجب از اشون... خب بعضی جاها ظاهرا در این مخاطبین دیوزم یعنی بعد یه اشارهش بدی ما فرض اشاره می کنم. خب جایی که خود ظاهر قران این تعبیر داره خب اون به تعبیر اونم کبیر حسابش مثلا در باب یا اون لم تغبول نماز در لم تغبول ما تبع اون لازم مالا این بزرگترین گناه بزرگترین دشمنیه که از خودشون دشمن این بزرگترین گناه کبر مرتن ان تبون ما صدر خب این در بحث کذو که اونجا بحث داره بحثی که, که داره. این بحث بحثی در قیبت هست توی و پس هایی کهز جز کباره یا کباره نیست که محلوم شهرم داره که آدمان این چرا دارم اما این روچند شد این که ایشون زوابت رو این گرفتن معلوم میشه بعضی جاهاش اینطوریه. خب اینا از سهاده و هم سریده بند جبه سریده بند جبه البته خب مدهی هم در بارون وارد شده معلوم نیست چیه یکون معنی مستلم میده شاید مثلا کیسانی بوده مثلا اگر جز اطفال محمد همه پیلون بزن سیدون جورو جز بزرگان تابعینه انصافا درمیان تابعین خوغلازه چهه خوغلازه است که میگن حجاجیشون رو شهید کرد بعد از هفشتون خودش موقع گفت سیدون و کسی دیگر هم نخوشته یه این آخرین نفر که دست حجاج به شهاده دستیدیشون کن کل زنده نصر و هم لا النار که من بخوام ذهنیت شما باز بشه که این بحث این نیست که الان ما اینجا بشیدیم این معلوم شد از زمان خود صحابه این بحث شروع شد تا شروع شد در کتاب های بعدی مصادر بعدی جیل هم بعد, جیلم بعد جیلم این مطلب آمد و باز خال زرحات ایشون هم به زوره تا در اینه کل موجبه, موجبه اصطلاح نیست که بعدها آمد هر چیزی که منشه یک تک... کیفر خاصی بشه اینش موجب یعنی سبب اینجا نهلت موجب کنایی از از کل موجب هست او جبالا حول اهلها هم نار این یک او کل و کل عملی یو با او دهل حد دیروزم تو کمه های یا دید اگه تو باشی کل ما اقیم کل عملی فی حد فهو من پس من اجدی میشه این میشه این ای مطلب برگرد به هم قرن عبدالع در میان تابعین یا نار باشه یا ح هر چیزی که برای شد نار باشه فهو من الكبائر ularh با این روایت که در اینجا خیلی مصادر داره و به اصال انسانها اصالیت فراوانی از ابن عباس نقل شده ان الكبائر از هبه همونی میرن توضیح ندادن چرا لفظه سر رو بکار بودن احتمالی که من میدم شاید احتمالش این بوده که ابو حریره از پهنمبر نمکر کباره سر شاید آمون از ابن حباز پشتانکاره همینطوری آنه از با که انصاب رضیه برام ابو حریره حدی یک سال خورده با پهنمبر بود در ده سال مدینه ابن حباز هم ده سال یاد ده ساله بود اینا خوب بهترش بود که از انجام سال اون یکی ازش برسیدن حالا یه حال سوئل امنو کبائر اگر سب کنید یه خاله تو شعر لغمانشان تو ما آمده در سبعین اقرم این اشاره است این که محدود بعدد نکنید کبائر رو محدود نکنید باز هم از ابن عباس التهال سعیدن جبران کرده جبر سعیدن کمی کامل سبونیه قانهایه ایلاس من به منها الى سبق به حفظ کرده غیر از نهول لات شدیرت من سخفه ولات شدیرت من اسرار ادته هم زی سخف زی و این شدیرت من ولا صغیرت مع اصراقه که ویروس کنید این توضیحاتش وجود ارز کردید این کلام رو برای اولین باش کنید که من دیدم از ابن عباس نمی شده و توضیح عبارت هم جوز ارز کردید باز از ابن عباس کل رو زنده حسر علیه الارد کبیرون و نیسه به کبیر ماتا و منخل عبد این محل الاستخبار یعنی باز ترجمه همونه باید بله از که باز دو منطقه روایت ابو هره رو بوده کم رو بکاش این درستبنده در زگاه های بهتر بود این روایت معروفی که دیروز از زیاد اشاره کردیم هم تو بخاری هم آمده مسلم داره بخاری داره ابو داود و دنگاه آنه اهلسان این حدیث خیلی به اینه اونها معروفه همه ابی هره و اول اشاره کردیم اون دیمهت نیود قال رسول الله اجتند و از سبع النوبغات قال و ما رسول الله قال اشرف بله و نفس التي حرم الله و الله بالحق و سر ایده ما هایتون باشه او که و اکل ربا توی و بعد البینه. اون کنم ارز کردم که روایت ما از اعمال مختلف شد روایت زندگی مردم زیاده اضافه کنه اگر روشن شد دلیل واضح بود ویلا خورده روایت سر آمانه و اکل مال نیتیم و تولی یوم و زهر و قدف المحسنات و غافلات مومنات ارز کردیم ما هم روایت سبع داریم اما پیش رواید نداریم کباهر سبع موقعات همون بله یعنی محلکات اینایی که میکشن نابود میکنن کن میکنن انسان رو از بین میبره یعنی ایمان رو کن میکنه و او گناه بله باز مطمی دیگر داره الکبائه رو سرداره بسی که صدعه موقعاته اینا باز از ابوبا برنس اول آقا و بالله سمه قتل و نفس. اون وقتی یه بحث دیگری هم مطرح شده بعضی هی که مونکر کبیر و صدی رستن یه دستبندی هم برای گناه کردن که مثلا اعظم کبائر اینه اعظم گناه اینه بعد اون بعد اون این برایت مشعرمونه این برایت که ظاهرش دستبندیه اولها الاشاکو بلا دقیق کردی سنه قطعا نفس برای رحبه ها ازام در درده از ختم در اول اونه بعد قطع نفسه بعد چیه و اکل ربا ببیهش دیگه درجات نگذاشته و اکل و ماددیتی الانیت بر و فرار و منظر یعنی حجوم دشمن زرد فردی یعنی دشمن حجوم رو شما قرار رو بر. و رمی المنسانات و الانقلاب ال ال احراب هجره تحراب در هجره انقلاب در احراب برگشته این انقلاب در اینجا درگذشتن به به حساب اون احراب و بادیه‌نشین بعد از هجرت مدینه که مسلمان می‌شدن اون بادیه‌ا بدون از ذهنیت قبلیه مدینه وقتی بعد از بیه میدن که شاخ خیلی دارن خواسته ندارن رو این ارهو دادن هجرت کلی از به انقلاب فکریه یعنی یعنی که ما از اینا این این اصلا فکرش ارزش میشد گفت دین دردی نخورد به معنی زندگی کردن خب این هم راجع به این هم شبیه افتداده نه. نه شبیه افتداده زمینه ساز افتداده بعد بگشتی به اون باز دو مرتبه از کلم مرتبه صحابه انحصار هم نیست در روایات صحابه از ابن عمر ابن عمر اصولاً در میان اهل سنت و مکسرین فتواش خیلی زیاده اینا سخت نفر صد تا از اصحاب مکسرین که خیلی پربرآیند هستن یکی هم آنها ابن عمره سید داره و اکثر این کرارا تقریبا فقه مدینه فقه عمر و عبد الله بن عمر اینطوریه فقه حسن فقه در, در یک که تحصیل گذار در فکر این دو شهر در این کبائل فقال سمیه ترسلی باید بول اون از و قصر و قبل نفس مومنه و فراق بسته پلیگه باید بودی بود توی نبود. اینجا باز هست و بباید ما یکیم اوهو بول واده ایم اون دو نبود تو ما هست و الهااض بال الجنس البیت عکس ب تفیر برای بلدل عکس بیان این بیت حرام، دبی شما در حال حیض در حال وضو این در حال حیض نماز رو بلد نخونیم مگر زمان وضو رو بلد در می خونیم ال الحرام این تعبیر زیاد شده من یه بار شنیدم یه جایی که خودمون و ال بیت الحرام خدمتتون احیاان و حواتن و مسئله الهات در بیت الحرام یعنی اون حرمت بیت و شوخ که راجبه عبداللهم زوبه میگن از اولان زبیر ازش به مرهد میکنم نه مرهد در اینجا به معنای منکر خدا چون جنگ رو برد در بیت الحرام در اونجا میکرد چون این کلمه در خود قرآن استعمال شده من همیشه از خیلی از مطالی که در در جامعه اسلامی جا افتاد اینها زمینهای های قرآنی دارن و من یور تیه به بزلم، به چون تلمه الهاد آمد. اینا بعد کسانی که قطال رو در بیتر حرام بخواه می گردن می گفتن که این الهاب آن معلوم بشه اون یک شعر یه هست که در سویفتی هم خوندین اصلا توزن قطعی یا قطعی من نصر خوبایی داری قطعی یا قطعی لی قطعی لی سل امام شهیه ملحلی مراد از امام در جه همی رو که زمان عبدالار نزو بده چون عبدالار دو بخیل بود. یعنی که اجوازن که ریاست از بحث در حقیقت تو نیست نه امام این بیچاره الان با انطاریات چه خودس گفته اینه ان امام به شریعه ملت که پولنده که امام نمیشه لیساله امام به شریعه ملت این مراد الهاده به خدا نیست و شما به مقابلش بگید شعراب نمیشه مراد الهاد در اونجا الهاد دیگه حرام اینجا هم همونه ولی الهاب دلدهی تلحرام چون این چند جا تکرار شده من یک توضیح میدم ولی الهاب به تلحرام ابلد که کن احیان و اما اینا هم بعد بعد بعد باز دارو که ابن عمر قاله از کبادر و تس بعد که میخوام به خاطر نقطه شم عرض از این عبارت دو سار عبارت خوندیم رویه ائتشام یک از اصحابه یک عباراتی است که ظاهرش اینه که ابن عمر این موثر از رسول الله نقل می‌کنه یک چیزی که ظاهره خودش گفته اون عبارت قدیمیه قال رسول الله اللهی که قال عمره ظاهر کلام خودشه یا به خود اصطلاح اهل سنت پیش بریم ظاهر این حدیث در خود ابن عمره ظاهر اهل بعدی بود که مرفوعه یعنی رسول الله فلیزا در بیاد اندرس از اینجا میگرمند رو بیاند اتنابا موقوفند و مرفوعند یعنی یک جا موقوفه یعنی یک سند مرفوعه که کبائر تسعون و قاعدشون اینه قاعده به اگر مرفوع ثابت نشد خیلی سندش قبی نبود معامله موقوف میکنن. باش میکنند یا قرینه باشه برای که کبان موقوفه <تصفيق> یا اگر مرفوع ثابت نشود یعنی به صریحه روکش نیامرد که این کلامه رسول الله میگن لم یسود ان به بتول گیره لم یسود رفع او تعبیرش اینطور تعبیر رو این ما نداریم چون ما نداریم میخوام از شما کاش باشین لم یسود رفع او نه اینکه مرادش رفع ما چون وقتی میگه مرفوع یعنی مرسل ما اینا از مرغور مرسل نیست یعنی از رسول الله موقوف به این کلام خودش اخ این جوجا رو می‌گن رویه اصطلاح اینجوریه و رویه هم ابن عمر ان الكبائر تسع و موقوفه سرانگیه یک سند موقوفه توی یک و برای همین است یعنی که از رسول الله باشه ثابت نیست و موقوفه به موقوف می‌گن یعنی نکاتی مربوط به کار اونها که بله رجب این باز از امیر ریسی نظر میکنه قال رسول نبولی الله المسلمون بله در پیغمبر فهمون در اشتن بلکباه فقال رجل من از صحابیه و اسلام و کمال کباه قال همونه تسعون اینجا هم داره فقط اون آخرش داره وستحلال بیت الحرام اونجا الهات داشت وستحلال بیت الحرام قبلت کن احیاء و انباطا این انشاء الله رو شروع باز داره که از ابن عمر النبی این مولا عبدالله پسر عمرو عاص فیل له قیل هاشمیت رسول الله رسول الله یخذه همن یعنی به چیزی یا خودمو استناد می کنه نعم اوق الوالده میاد همون مثلا اینکه 7 سالی سن باز عدواییو و اشتغال کار کرسنده ها و اشتغال کاری فقاهه فقال رجلون مرد فقاهه قال عشیر خوبل الله و کثیف نفس مؤمنه و لخرارو یوم زاد یوم زاد براش در می‌برد چیز فت نفس زاد و لخرار و لخرارو یوم زاد دنیا از واقعیت شده. اما خیلی احتماله رو که نتونه احضب کباده دونه احضب که من یه مداری مخواهی تاریخی که احضب کنم یه رباره دیگری دیگریست که ابن هبان و ابن مردوه یه هم همین بکره ابن محمد ابن عرب محمد ابن, ابن از این نوشته این رباره این از همه اینا دیگری داره اون روایات قبلی کلماتی بود که صحابه از رسولان نه رو کردن من صحابه هم چند دفعه از کردم در سال سرک امرم نبدالعزیز به مکه به احل مدین کسی بود رسطاب به مدینه در مدینه طبازات بود که سنه فیرمه بره کنم بکنم حالا در از صحابه روایات و نبدال های این ها موجود بود چند دفعه داره از کردم که اینا ممناه جمعا در قسمت مختلف یکی از مشهورترین تنی که در اون زمان با عنوان سنرنبی مقروف شد کتابی بود که پیغمبر اکم برای امر ابن حضم انساری نوشته بودن به یمن رو پرستاد بودن امر ابن حضم انساری این کتاب بعدها دست نوی این شخص بود اسمش ابو برک بن محمد بن امر ابن حض تفای این کتاب تا زمان ما هم موجوده. این گونه یکی از مسادر مهم سنن و نویه الان هم تو کتاب یکی در کتاب کنزر عمال داره گرنان سنن یکی هم این کتاب یک معذار از این کتاب امراد نه این از این قابل ارزشه این فردش اینو توضیح میدن، این فردش با مسادر قبلی مسابقه قرمی شفاهی هم این یکی کتریه و این بیازه کتریه های کمه اصلا انسانده کتریشون از رسول الله کمه یکیش اینه و ما روحات سهیه داریم که روحات هم نهارو میکنه تو باب دیاد از آده اسم شده شدن که از روحات محروف هم تو نیست که امام بنامه بر برو به خانه عمی بکر یا پسر میشه این محض فه این نه این به رسول الله فه دیار مثلا باری دیار این زرش رو ببین جایفه ببین چی ببین چی نوشته بگه من رفتم آمادم ببین نوشته که جایفه سلطه دیاره اصلا سلطه اوشان من یادم مثلا هم دخل شده مثلا مقداره فقال عبو عبدالله سرمه درسته برای حتی ما داریم که امام صادق بین کتاب ارجاع دادن چون این خیلی عرضش داره من میخواه و عرض کردن چون بعضی مطرح کردن که دیه ی زمان در کتاب که رسول الله در همین نوشتن که دیاتن توشه اول کتاب نوشن که نفس انسانیه معتو و به به صد تا اده از احلسان نفسی کم مجموعه دو نفر رو در خودماشون نام بودن از الانهشون میدیرن از خودماشون نام از اسماشون در دوکرشون دو نفر گفتن به این حدیث تمسخ میکنیم و یه زن و من مصابیم. این رویش های بحث یعنی بحث تصاویه دیگه یا عدم تصاویه برمیگرده اساسا بیدیم کتاب که یاد سنان نبیه یعنی تشریعات رسول الله این کتاب خیلی با عرضه شده کتاب که اصلا اولین باری هم که رستن مخواستن اهل سنت سنان و نبیه رو جمع بکنن همینه. این شخص یعنی ابی بکر ابن محمد ابن امر ابنه هست یک دختر امونی هم داره امره بنت عبدالبحمان ابنه هست امره اسمش امره است از اون اون هم یکی سننی داشته و لذا عمر ابن عبدالعزیز توصیه میکنه که سنن امره ابنه هست و سنن امره را جمع بکنید حتما اگه بحث که ما عمر عمر شیعه، خیال که ما در گفتن س، صدام عمر خطاب جمع. نه این عمر بن کاربرد به عمر خطاب نداری. اولاً زن است، مرد و جزء انصاریات اصولا مکی نیست، و اصلا دختر هم یه همشهره. آشنا بشین اینجا و محلوب و عرض کردم در خود همون کتاب آخر شنگی بوده و دیت با مرعته علم نصف دیت برجم این منشأ تنصیف یه زن و مرد در حقیقت به این کتاب برمیگرده البته صدر کتاب نوشته یه انسان صد تا چطور بخوند این بود یه ای همون بعضی بیدر اصول بخونیم که آیا اون صدر اطلاق اید بذنیم و از ای جانبه قید خیلی چند دو نفر پس این مثلا که اصولا مثلا زراحه کتاب می بیخوره اختلاف دیگه زمان ریشه این بخصو برسون ازگرگی از کجا پیگاه شده این جز سنان نبی بوده که در سنان نبی بوده در کتاب در اینجا در ابن حبان از عبی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حرز ببینید ان عبی که محمد باشه ان دیگی اون انجرد نهرزنده این شرحدیس روزن روشن شد انجرد من این یکی ده کمی توضیح زیاد دادم که این داره ارزش داره این جزب نبادره نوشتارهای رسول اللهه که اصولا اولین باری که بنا شد که سنن جمع آوری میشه به این مراجعه کرده و از طرف امام سالمم تایید شده البته یکی نکته در کتاب که اگر واقعا اون دومی اجازه میداد در زمان صحابهی نوشته ها میشد خیلی اختلاف می اومد ان ابيها بخدا مستند به و او چیه دو تا نوشته نه اونم داشته اونم به از جدش دقیقا نمیشه انجدهی قاله به این کتر رسول الله الى اهل یمن کتابا فیهل فرائض و سنن و دیاز. این عبارت درمی کردیم از کتر این مهم که که صحابه نشتم فرائض مال باب قرص سنن هم مال سنن پیغمبر در مثل نمازین ها دیاد هم مال همی که امام صادق ارجاع شخص رو که بگو نگاه کن لداسه ببین ما امر بن حزم یه مقداری این مسائل اموال هست که ظاهرا اموال سوال کرد که در کتاب اموال ابو تو زهران هست من به این کتاب این خیلی ارزش داریم این کتاب اگر ظاهرا این مقدارش برای ما چیز نبودن چه مشکلی پیدا کرده و بنفسه ما ابن حزم حال وکان, وکان فیزار کل کتاب پس این این روایت واحده در کل این دو سفته که روایت داره فرق میکنه. این یکی نوشتاره حال علی در کتابیم بود این حکر این حکر برای کبار این دلالای اومد قیامه این حکر میشه که پیغمبر اکرم در باب چمیره اضافهی برای این که آثار دنیاییشو نگاه کرده اصلا ای یک نظر قیبی و باطنی حضرت داره. تجلی و تجسومون اکبر کبار اندالله اشراحان دلاله و قتل و نفس المؤمن به غیره هم و الخرار و یوم از و اقوغ الوارده و رمی المحسنه و تعلوم سه ما در باب ها کاملا توضیح دادیم سهر یه خصوصیتی داره که غیر از اینکه که خودشان حرامه تعلمه و تعلیم و حرام پس اگه یادتون باشید کسید صحابه سالم عنوان باه قرار داده بود و یهرم و تعلمه و تعلیمه این توضیح هایی در بحث اگر اگه یادتون رفتی نگاه بکنم اونجا توضیح داریم و اکل و و اکل مال یکی این یکی از روایات بسیار مهم و سالالله هم مجرور شیم اقایی سهده سوناسی شهر بیدیم آشنا بشیم همون ما از اینجا رسیدیم صلی الله علی محمد